سوره 8 اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم به نام الله که بخشاینده ینده و با رحمت است آسمانها ها و آنچه در زمین است تسبیح گوی خداوند است. بدانید که او قدرتمند و حکیم است. او کسی است که نخستین بار کافران اهل کتاب را از دیارشان بیرون کرد در حالی که گمان نمی کردید بیرون رفتنی باشند خود آنها هم تصور می که حسارهایشان قادر به حفاظت آنها در برابر مجازات الهی است سرانجام خداوند از جایی که فکرش را هم نمی به سراغشان آمد و در دلهایشان وحشت افکند آنچنان که خانه های خود را به دست خود و به دست اهل ایمان خراب بکردن پس عبرت بگیرید ای اهل بسیر و اگر خداوند ترک وطن را بر آنها مقرر نکرده بود همشان را در دنیا گرفتار عذاب می کرد. که در آخرت عذاب آتش برایشان مهیا است این به خاطر آن بود که آنها با خدا و پیامبرش مخالفت و دشمنی ورزیدند بدانید هر کس با خداون مخالفت و دشمنی نماید خدا مجازات شدیدی می‌کند. هر درخت نخلی را که بریدید و یا آن را پا بر جا گذاشتید همه به فرمان خدا بود تا بدکاران را خار نماید آنچرا خداوند از دستانها گرفت و به پیانبرش بازگرداند دستاورد تاخت تازه اسبان و شتران شما نبود بلکه این خداست که پیامبرانش را بر هر که بخواهد مسلط می کند. زیرا خدا بر هر کاری تواناست آن غنیمت هایی را که خداوند از این آبادیها گرفت و به پیامبرش داد از آن خدا، پیامبر خویشاوندان، یتیمان، مسکینان و در راه ماندگان است تا میان اغنیا و توانگران شما دست به دست نشود آنچه پیامبر به شما می با خرسندی بگیرید و از آنچه نهیتان می کند، دوری کنید و حرمت عوامر خداوند را نگاه دارید که خدا مجازاتش شدید است نیز این غناغم از آن پغرای مهاجرین است همان کسانی که از مال و دیارشان رانده شدهاند آنها فضل الهی و خوشنودی خدا را جستجو می کنند و خدا و پیانبرش را یاری می رسانند همه آنها اهل صداقتند و نیز از آن کسانی است که قبل از آمدن مهاجران در دیار خود بودند و ایمان داشتند و مهاجرانی را که به سویشان پناه آوردند دوست دارند و در دل نسبت به آنچه به آنها داده شده است حسادت نمی ورزند. زیرا آنها دیگران را بر خود ترجیح می دهند، هرچند که خود نیازمند باشند بدانید هر کس از بخل خویش در امان باشد بیشک رستگار است کسانی که بعد از آنها آمدند می‌گویند. <تصفيق> پروردگارا، ما و برادرانمان را که زودتر از ما ایمان آوردهند بیامرز و در دلهای ما هیچ کینه و اداوتی نسبت به اهل ایمان قرار مده پروردگارا، تو رعوح و باگذشتی آیا منافقان را ندیدی که به یاران کافرشان از اهل کتاب میگویند اگر شما را بیرون کنند ما نیز با شما خارج میشویم؟ و علیه شما از هیچگز اطاعت نخواهیم کرد و چنانچه با شما به جنگند شما را یاری نمی‌نمایی خداوند گواهی میدهد که آنها دروغ می‌گویند چنانچه آنها اخراج شوند اینان با آنها بیرون نمی‌روند و اگر با آنها جنگ شود یاریشان نخواهند کرد اگر هم یاریشان کنند به جنگ پشت کرده فرار می‌کنند در نتیجه یا رویاوری نخواهند داشت وحشت از شما در دلهایشان بیش از ترسه از خداست و این به خاطر آن است که آنها جماعتی نافهمند آنها به صورت جمعی با شما کارزار نخواهند کرد مگر در قلعهها ها و پشت دیوارهای محکم آنها خود شدیدن با یکدیگر درگیرند در نگاه اول آنها را متحد میبینیم اما قلبهایشان پراکنده است و این به خاطر آن است که قومی بیخردند همامند کسانی هستند که قبل از آنها کیفر عمل کردشان را چشیدند و برای آنها عذاب دردناک است کار آنها چون شیطان است که به انسان گفت به حقایق کافر شد و چون کافر شد گفت من از تو بیزارم زیرا از خداوند آن پروردگار جهانیان میترسم عاقبتشان آن شد که هر دو در آتش جاودانه بمانند آری، چنین این جزای ظالمان ای اهل ایمان حرمت خداوند را نگاه دارید و هر کس باید بنگرد که برای فردایش از پیش چه فرستاده است و حرمت خداوند را نگاه دارید که خداوند به عمل آگاه است از آن گروه نباشید که خدا را فراموش کردند و خدا نیز آنها را به خود فراموشی گرفتار کرد زیرا آنها فاسقند هیچگاه اهل آتش با اهل بهشت برابر نیستند زیرا اهل بهشت رستگار و پیروزند اگر این قرآن را بر کوهی نازل می کردیم آن را از خوف خداوند چنان خاشه مییافتید که از هم متلاشی شده است این مثالها را برای مردم میزنیم امید آنکه اندیشه کنند هو الله الذی لا اله ال هو عالم الغیب والشهادت هو الرحمن الرحیم خدا اوست که هیچ معبودی جز او نیست آگاه نهان و آشکار است او بخشاینده و با رحمت است هو الله الذی لا إله الا هو القدوس و السلام و المؤمن و المهیمن و العزیز و الجباه و المتكبر او خدای است که هیچ معبودی جز او نیست فرمانرواست پاک است سلام است ایمن کننده است مراقب است عزیز است باجبروت است بزرگوار است و منزه است از شریکی که برایش می‌پندارند او الله است، خالق است، آفریننده از عدم است صورتگری توانا است همه نام های نیک از اوست و آنچه در آسمان ها و زمین است تسبیحوی اوست و او قدرتمند و حکیم است و الله صور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العلي العظي راست گفت، خداوند بلند مرتبه بود، از این کاری از مؤسسه قرآنی پیامبر مهر و رحمت صلی الله علیه و علیه و سلم